یکم آخه اوت نگل خود کار کنم زور خودم من مروزی نایابم له همون رجو همونش یکی چیانم ده لباسها و باشتر داشم من زور آرامگرمو یادواریشم نایابه. یکم اخو تنلگل خوت بکوجی چی بده تول امر و دایت وګه وې بیر کړه نو وکانت پی جی اند وی سبینیشد بوجو ردبه کبیر کړه نو وکانت د پی جنن جیمس اعلان ایا جرزره جوید لدن جکل ناخته ودیت وګه وې کات ایا ریدا و وې سوتہ جو به درو کې یک به پایان بګی لوخه دا دودنګد لنخته و بیسټو یچه چان هانی داوید بو هستانو دنگا که دیکش هانی داوید بر راک شایوی لنیو پیخه فکت داو لگر مگوری و پشو دب مینی توا؟ آخو کام لم دو دنگا سرکو تو دبن؟ بیر تا جاریک بو بوا مشقی ورزشی؟ بلام دنجی کت لدرون و نخت و بیستو هانی داوید بوا لمالا و مانو و تمشاکرنی تلسیزیون و لغفدان و خواردنی پرس شیرینی چی بلزد؟ ریم بد همه منان بونه ورگل چېینده د وینوبیر د کینه و امرنه وسته دا او د میزندوبې ایا به دنجبرس لګل خد د دوی خیال بکاو بیر کړه وا لمه شته مرې کیتون دا بوید لګاسرو چې کارکداو نو کاتدا لدرونی خد د تدګوت امر څنګه چې اقلا رقم لیتی یاخد خیال یخد بکا چون کس ترکيزه مشاکرنی لسرتو یو دوی لوکاتدا بدن جیبرس لګل خد د دوی بدل نهيوه او كسه قمانده قد تو اقلد لوكات دانا هاو سنگه پیدر چهد با ازمونشی سلبیده تیه پارید کبوبی تاهوه هنانی هستی چه خراف بد بود کاد ناکاته چش دنجه دبستید او ازموند ویاد دینه تو همان هستی بدد بوده جره یا خوراکی لبایی ازمونی که و کپشتور رویند داره، بلکه تنها بوی کرنگ لذت حاکی دارم ازمون رودت تو بیلی دکیتو، هر پیش و بو انجام تا و روان کار و که هز بدال تنجیو بیزاری و ناراحتی دکیو ل درون داد لی، بوشی تا و رب کم تا ازمون خرویده داد، لوب روایت من باشتر ل استاو هز بخام کام کم، رب بپرسم. اگر سر روشی کارکت لسرطای هفته در دعویی لکردید، لر روشی پیان کاجمیر نوی بیانی لنوشینگکی چایی پیدو کبید. چی ببیرد دادید؟ آسایی پرسیار گلگ لخود دکید، وک بوشی دیوه چای پیام کبید؟ چی دیم دیوه؟ چه حضایی کم کردوا؟ آیا لکارکم درم دکاد؟ بدوایی در پیشبینی سرزم اگر سلبیکان دکید وانیا؟ بلام آیا ب بی را سلبیانه، با تو نیبیری اجازه دیدی ل دا بخوای تو. وق آخو بری آوزیاده تند به کفیم داد. جمآن موه آسایی، املا بیر دا خلب بخواد. بلکه دگونجده دوای کوتایی هات نیکارکت بگری تو مالو. هوا لکانی امدا و کاری کتوب رو تا و روانکراوی سرککت، با هف سرکت بشاری تو. اما جدیت های نر راحتی به هر دو تان. ولم آخو لکوتایی هفت دا هستد چند دبی. عای دوخی معنیت برز دبیدیان روحاو دا بازیو. ای چی درباره دواتر او آو رژاش کبد وای داده؟ بدال نیایی و معناییات نظام و دعات پیوده باد؟ وانی؟ لکوتای دار رژی پیشنهاد دیت و توجه لثه و روانی چج له کارسات و مصیبت کند؟ داد؟ بالامنوع رژادا ریکوتیشته چی کت و پروتچه و روان نکروده کی؟ سروکارکت بازدا خنای ک والد دروانات و پد داد؟ همساله کت با خوشه؟ خوش بیه کمین کزبم با وانی رژی لدعیبون پیروز باید کم؟ بان شوية بابيهو پیش وقت او همو هستا سلبيا نتال قرد لكتبه كيدا چون دلغ راچو هستا سلبيا كان رادا قريد دل كارنجي دلت پتر لسدانواتو سي او روداواني بروامان پيتیو كار لهاستا سلبيا كان مندکن هارجيز رونادم ستاحفتو کمتر لوشا کنا توانين دستان بسر دا بگرين وقتشو هوا ومردن وقت سرشتی تیمروف اما زوروامان کا خومنده خومان دادا دوين پیش بینی روداو یه چگل زنکوکانی کالیفورنیا لسالی 1983 لیکولینوه چند انزام ده، لسر دفتگوه لگل خودا کرده. لیکولینوه گیشتا او در انزامه کزیاد لسده هشتای او و تانهی به خمانی دلینو و سلبینو لدجی بر جواندی کاما کرده کن. تو دویه بیر لموده کاریگری او برزوری بیر سلبی کام استدامه کارجی سادت په بیسفرم اویش اوه کاتک تویته نیو بیرتر نو خریچ شان کردی پیویسته بوستی تو او خالانی بیر دی ذکر نو تو مارک لو کتداس سرسان دوی لو برز دوری موذکل دستت شو لو خودت په قرص کردون لیردا مفاجئه چدیته ہے شو کلین اوکاتن ها او انزمانه بدظنیان بلکو گیش او راسیش که اندل راچیه دبی ته و توجبون بسطاح هفتاه پنجین خوشه که لواحه پستانی خونو برینی گذاون و ردله وتا تو با او پریویستی خوتو با خود دادویت و سلبیانه بیر دکته و توشین خوشیده بید و جو جک کنیم کارش پریویستت به آرماتیک هز نیه دکتر وین دایر دا ل کتاب کدی دانای لشگانی روزانه من دگویتی اوی خاطی بیلی دکنه ولباریه دادوین زیاد دکاتو دادویت کرد در تو بلای چی وارد لبکات گفت و گلگال خود شانده توانید دستی بسورد آبگری. چون محله او گفتوگوی دکه لبرجوانی تو کار کات ند لدجت. او بعثی استام آناب. پنج سرچاوی هن بو آخاوتن لگل خود یه برنامه رژی خود. سرچاوی یکم دایکو باوق. دیتوی عادت. دایکو باوق کد ل رابر دیده دست و آجرگلی چمپیو توي. وقت تو تنبالیت. تو نتوانی وقت پیوستیس کاری کنجام بده. تو نارکوپیچیت. تو فلانکس و های ل تنبالیو بی خریده. هلمستر، لب تیاب چی دلایت کاتیک با خود دوید گوییتی، لماوی هشت سالی یکمی تمانده. بگری منعی لنه و خزانشی تا اجازه بد پروورد ببین، پترلا، صتوچلو هشت هزار جار پید گتر آوا یا خود او کار بیر بکاروا، صتوچلو هشت هزار جار. سر سرمان دگات تراب، کاتک دزه نیله همان او ماوی جمایر پیام اجازه بیا کن، کفی منگیش تون بونو زیاد لپیویش کیش. دکتور هلمیستر در چواست در تفرناکت اماش آسایی با مانایه که دای کوباوکان من خراب نبون بلان بداخت و رگو شوازی چی باشتریان پی پی نبرد و چون که آوانیش با خوی کوباو چیانه و هر باو شویه گو بونو برنامه رشتره و با همه شوازی جی امیان پرورده کرد و ببی مباس با شویه چی سلبی برنامه رشتیان کرد وید هاو ره لگل خوشویستان ده لکتبکی انداعهالی جیان دکتر تاد جیمز ویان ویدسمال دلن که تگدگیت حوصلی تمان پترل سدانو تی به هاکان لاقل دا ذخیره بود. که تگدگیت تمانی بیست سال سر به هاکان کامل بودن لاقل من داد جیجیر جي و تصفاون. بامشی برنامه رجیا پروار دبون سال بی بی را خود ایجادی. سرچاوی دوم خیلی دمگ. اگر یادوارت گران دو به کرد بید گران بوده. له چګله خلانه کېبګې که ما مسترافه کړدو كاتګلوانه د پرسیاره پرشارې کېدورم کړنو زیاتر کړدو ما مستولامه داوي ته ته وګوتويتي ته هرڅه نه توانې له هیڅ کېبګې سروشت کې خونکرکانګي کېدست چې به غلطه فکرونه کړدو اگر وک زوري نه بو بیت روبروی کومل خلوي سلبی و او اما بو بو امه بوچته دا و هر بوې خوندمګا ستچاوې جومي سره خود جاده ګنجید ايجابيانه بو خو سیم هاورکان او رکان به شیوی چې جوړی کاریګری انصر یفریده بیت برادې کې د ګنجې هم د خوي بد بویا تر بوږی ځنوا وخت دګره چشان او می خوړن و خو ګرتن به ماده به کرکانو را کړدن له خویندنګاو ته تدوي دواقع دزوربې دګره چشکان به کیسن دیکه و فیری او شیر او خووب امزه نیوان هشت تا 15 سالیا بو هر ام تمنه ځانای نه درو ناس به اما ویش هم اندالن لاس رفتاری کسانی دیگه دکانور. سر تحویچ قرارم راجی اندم. یک کالینویک در آمریکا انجام درآوا، چون که تکنیک بسارد بند. انجام یک کالینویک کلاوان خشتو کلایوان لتمانی هفتانه هفتنا نزیکی 59 کدجمر، به تماشگر نی تلفیون بسارد بند. اندالاکا گورانیبیشیان اکثر ل خوششیست که, که بینه. خلاص کوت و رفتاریشی تایب دکات. امید لعسایی دکات او. تنها نه اگر او رفتار سل بیش بید. نمونه ای از حالتهایی که لگورانی بیچه بناؤ بانگزیهانی کانه که لعهانجک دا با پوشاش کودر کود. باشه کی سیچیار بو. دزانتی رویدا. له من او هفته ده که لگورانی بیچه کی کی دا در کوزیاتر لپن خانم ل نمونه او پوشاش که انج پوشی. تو خود. لگال توار سر تا و کیپی شوده برنامه رژیتی خودی که ل خودی خوته و سر تا و گرتو سر بارد کهی. لیچک لوان محاضر کنم دل سرد صلا داریتی تا و بسر خوده آمد ابویک پیگوتم کجای دایکو با و کی خوشه ناو و هر چیز خوشه ویسیان بود در نبری و هزدکاد لعائن هموان و پرش بخراو خویبتن ها دبینی و بوی دستیداروت خویشی سلبی ایش ظر خوری و تلیسی. آوگو تی خوردن تیج بخش شو ل همان کاده تا ناگهه که با او بلام ام چه جبوی بو تا زیاد کرده چی تو قینه رو ترسناک لچه شیده لو که تا دا تمانی و هش سالو تا او که تش هستی با تنیایی دکه هر بویا با امیدی دوزینوی رگاه چی در بازبون لگرفتا که آماده او وانه بو بو دکه برنامه ریجی خودو آخوتن لگل خود ده بد که تا مروه کامرانی سفتو تو تخونتانی بدی دینه ياخد خمبار و كساسي شي تنهاي بي اميد لرسيان لنباريوا دكتور هلمستر دالت اويدي دي خيط زينتوا دا سلبي بديان ايجابي لكوتاي دهره اوا درويانا دكيتوا استباسي سي آستا سرشيكي لغل خود اخوتن دكي آت يكم كفيدا قدرت تيرورستي ناوچي تيرورستي ناوچي من مترسي داترين آسي اخوتنا لغل خود د گونجه د بت کتمرو وی چی به هی خود بکیتو او بربستانه لبر دم د قد کاته ک ريګري به د سینانې امنځه کاند ټیرور سیناچی امژګل استلبی د نره وګ من شرمنم من لاواز من زور لاوازه من ناتوانم شي شي لشم کم کمو هولم داو سر کتونه من ناتوانم واز د ګرچې بینم زور هولم داو بل ام هر بی ور من ناتوانم زوله من ناتوانم لبر خلقو بینراند ده بده بلسیوم سلبي ترچشنيه خردا ماجيستربي بو عقلي ناوچينا آگهي خواندن يرنو يك بينج د پاتي د كنوتا کو ا مازتن د بنبشګل بيرو برواو باوري بهزيانو د جويج د كار له جولو خلست کوتو هسته تيبه کې كن ينو دنياي د وروبري اندكارت اصليوم وشي بلامي سلبيه اما سي اخوته نه لګل خط لا اصلي يکم باشتره کاسکه حز و ګرانکاری کتیو شی بلامي بو سر وړ دکړه بده خو امو شی و شی بلام سرزم او اماجه ایجابینه د ثریته وکه پېشتره اچو وک د میو چشم کم کوم بلام نه توانم دواز لزګر چشم بینم بلام د ترسم له کوټه ای د زیاد لښوم زیات کړه د زول خو هستم بلام پېنت خوښ نه استاګه پېم غوتې ټوکې سې چی یاب بلام چې به زایم به شون کوشی بالام همیشه همون آواز صرفت و کبدوای دادید. بوی آوپی آمانایی نا آگاهیت حالی اندگریت او دانپاریزت من نتوانم. خلق کوشی بالام بوراکردمو خود زینه ول هر برگردانی چی کاری و کارا با کردند. لبر اوی لپشت کوشی و استواشی من نتوانم. ترسی رگریپ هیا بود در برکه لجیشتن با آماندگی. اصلی شیم و کوتای قبول کردنی ایجابیه اما عصای اخاوتن لگل خود به هستین است بخونقبندی هرو از سرچاوې کبوهز و نشانه مطمنه به خوبونه رزګرفتنی کې درستی کېستې نمونه خپل کړنی إجابی لم در برینانه بر خواره و ده در درل من د توانم واز د ګرچشام بینم من د توانم آمانځکانم د کم. من به هیز مو توانای ګورم هي من مرووی چی نایابم. من یاد ورې چی بهزم هي شرجم امپیانه إجابیانه طالپشټي هنګا وکړم من ده کټ به وره برځو من من تاکب دست کندیم. دوای بازکردن من، دپینسرتیا و سرچکی برنامه رژیکاسیو، هر سی عاشقانه خواهتن لگل خود استسی جورایی عاشقانه و تویش لگل خود باز دکی. یکم جوری عاشقانه خود بیکردن وای. ام جوری خود واندن و عاشقانه خود هزی کی جوریه و نزدیک به بیتهای انجامگری متاسیدار. بله من. اگر بیید لکاسه کرده و کخوش نیست و حالویسته کد ویات هات و کتی اگر اوکسالعینگ بو. جود لو پیوانه بوکه به خوت دګوتون چویني هسته کنه خسته چونه ام جره اخوت نه لګل خوت پیډه چیت په بيته هوي خموچي او كارګيري چي سلبي او ته خرڅندري شي لا شي هر ودا ګونجيت د چيز ورګتن مسل زم بواره كاني جان محرومد كه فرنګوتلو لن و نسيويكي چاوجيري بيد كرنه و كاند كه چون کذب نه كردار چاوجيري كردارانه كاند كه چون خو چاوجيري خو چونکه دمه سرشت سعوديست ورشتکان لريکه چونکه سترنجمو دیګری یک دوه جوړي اخاووتن له خپل خود له خپل تویش کړدنه ایا رویداوه که او چې بي کنه او مشتوم ریکه ولا ګل کس شيګاو دوی اوي بزې توی تویش کړد زار چې لیکل زین د دادی بارکړلو ته وا لم حالته خود دوه رولټ ویني وا دروز وو ګوي دوه دنجینا وچی تبه یی چې ځان خود وینې تو دوه مشکسته کی برن بره چند دارگ هم کسی تی مشتوم رو توی جد لی و لگل سربار کردنی کامال ایگ دستوازه لی هر دارگ ده دا که خواست گد خواست و لکاتی مشتوم را راستقینه کده بدگود بانوگ. داری آینده دا باش اگه دار با لگل چه ده دوید. ولامه کش ببوره پشیمانم. تواش برام بری دلید. پشیمانم بزنیه. دستر هم شوازه بردوام دوید تاکو هاشو آگاد نامیند. هم جر اخوتنه لگل خود ک سیم جوری اخاوتن لگل خود بقصد دربری نی راشکوانه و آشکرایانه. ام جوره دو شیواز بردگری. شیواز یکم خود واندن بدن جیبارس. ای کسی که دیتو لکاتی رویشتن در بدن جیبارس لگل خوی دارد دوید. جالتشن لغولی میون خانه اگر هاتو شم دکرت کسی کم بینی بدن جیبارس لگل خوی دو او دستکانی را داشن. تنها با وی که تی بینی کت تما شاید کم لام حالات کسکالش جرف شاری چین آسایده او به بیویستی خویل اشعاری تنا به خواب ترک نوا دو باد بم رگه. امشواظا کمال عزیانی که تندرسی دا دا. ده بدلوانه بر از بناوی پستانی خویان هروادوته بر همهنری وزه چی سلبی گوره. شوازیدیم با شیوعی و تویشک ده بذ و جوره کسروشی نتواناید داد. برون کنواه من نمونه دهن ما. وعده یک مهابول میوان خانه مدلیا لیزابس در مونتريال و یک لر رواج چی میوه خانه کد هجوم ردن جی خانمک بو بخانمی چدیک دیدگو من ترسی چی زور ملخص کردنی بردم خلق و بینر نه زن چون خلق دتون او کار بکن چون لبردم کسانی دیگه در دوستن ک اشته توشی گال تفیکردم ببنوا خانمک ایت ریج دیدگو تو زور راز دکی من هر چیز لبردم خلقو و قسم نگم اگر من حالوی استشیپ کنی وا دبین خانمی کامل برای درونی خوی وا شد گلی چی بتو که هر خوی بو خوی حالی کندوه تنها وندگ نه بلکو کاری چیز خلبی که سرها و ریکیو حانی ده همان هستیه بی برنامه ریجی خود دوپاک کرنوی دستواجه سلبیکان بو درون لخوده گری سرباری قبول کرنی ام دستواجانه لخلکانی دیکوه امش بو جوره تا او پر زررمندو خوی هزگله چیز خلبی که شکنه رو ادای رولکاند لسرزم بوارکانی جیاند ده کم دکاتوه بیده سی روزانه بمسی جور اخالت نلگل خود دا تی پارید. در ری برنامه ریجی و دوباره برنامه ریج دو کردنی اخل من با آماجگلی زور سلوی و کلکو دا جیجی رو با قولیش لا لاشعور دا رگ دادکتیو دا, دا خو لمباره و زنه المانی گوته گتویتی خرابسین زیانکان پیده گنجه توشی مروه وید گمانی خرابیتی بخوی فرموده چی پیروزی شیده فرمید تستان خ در چاک بختی ها تو و منو هر کسی شیدی که در لگل خودی خو منده باو جوره بدوین که دبیتا برنامه رجی ایجابیانه خود. در توانه منده هیا همو برنامه و پروگرامشی سلبی بگوارین بخص نجی پروگرامشی دی که نوی ایجابی که هز منفه ببخشه. های امکارش ساده و آسانه. اویش دزگرتن منه بسر بیر فرنوکان منده. ایمه خاونی اقلمانینو در توانین هر گورانکار ارنسال مزل اکتباکی دا بیردو ابن راک یکانی زانستی اقل گوچویتی بیرکانم فکرکانم دست بسر و زانیاری کانم دادگرن دست توانم بیرکانم آرستب کن هروال اکتباکی دا گرانواب و خوشگویستی ماریا ویلیام سان گوچویتی دا توانا منده هیل هر سات وقتی دا بمانوی رابردو ایندمان بکورین اویش نوی برنامه رجی استامان د ځانوسی بدن راجیس منیانې د مریده ابن من بر پرسم له عقلم کواته بر پرسم له انجام کارکان شي حق خوته هر وګله توانه س داهه به شوی بیر کېته وا ته ګرته د خوازی بیر ژه سنب کېته وا که خونې پیوډه بینی چې دې بتوانی بیر کړنه وکړند آراسته بکت ځګل خود بیر کارند له جیر د صلاتي تنها خود دان د دا کریت بسانای اخاوته نګل خود با آراسته چې دروز د آراسته وکړي کښ جان از مونګلی لیوان لیو لسرکوتنو کامرانی لکته بکه انده چاون ترزبه تابی بیتوه بي جا کانی فیلدو مارک فینسین دالین ایما همو من لوه دا وگی چین کهاری کمان هجده ملیون خانه اقلی من هیا تنها آرسته کردنین پیویسته برلوه ایب چین سر او پلانی لطوانی لره و دنگو هاور سلبیکان بگورین بو, بو ایزابیانی کارا بابود راو بکم چون اقلی آمادو اقلی ناو چین آگاه اگر واماندن آقلي آمادهبري که ل آمادهکاریبر نمکاني کمپیتر رو آقلي ناوچش آقلي کمپیتره که آمادهکاریبر نمازدان ياريکان ل درو کودکاتو آقلي کمپیتره که پيدا ولامانده که بونمونه اگر آمادهکاریبر نماک ل برنامه کيدا اما آمازاني با کمپیتره کداست من شرمنم من نتوانم مازلت گرشي شم بينم من هزب به تاقتي بيزاريده کم من حوصلم کم اوزور طوم من نتوانم ممارسي ياريوارزش کم کم اگر امرنامه ی خسته کامپیوتره کوه لسر شاشه ی کامپیوتره کوه کته مت اما من شر منمو ناتوانم وازه زګره شامبین مو حدد وای بو افرمان ی اقلی آماده کو کرناوی زانیارکان او ناردنی کی بو اقلی نه وشه اما ی دوایج لشتکان ناګد به دربرینی چی ساده تنها زانیارکان ذخیره دکاو د دوایج ته دوبارې اندکاتهوبه به هیڅ زیاتیو کمیه اگر تخیا م یک ګماوی چی دریزو جرانه به پروګرام ترف او پی عمل آسده شه قولی اقلی ناوچی دا زی جیر دا, دا و دوائیش نتوان ده بگورده مگر بگورین برنامه شی دیتی درز نبی دانانی دانان برنامه شی دیتی نبی است اگر و دوام لیکردی بیر لسگی چی سپی نکیتو توان دتوانی اگر دوام لیکردی بیر لسگی چی سپی نکیتو توان دتوانی بدل نیعی و نخیر توزدار ده بیر لسگی چی سپی دیاری کراو یعن از پیچ اگر امر دا و, و دا چی و مالیک دا و د وینین عقلینا و چی و به وسانو نا و د ستواجی بی لستگی چی سپیکر وای لای خو پراستو هم حالات يهوده زکات کسګ لپاره بارې باردو خو اخواب ته پرشیاړ لیدکه ته د لی خراب نیم نه اگرې وشین نیم د سریت او وشې خراب په فرضې لبر واګر پرشیاړ لکسه کړ لپاره حال او احوال او قوت خراب نیم ته بل هیوای بختی چې باشو ده خو نا آگاہی تنها اوپیام ایجابی انا هلته گریو ده فارزی ک دلالت لکا کی استاده کم اگر به خود وله باز ده بم پیامه ک هیڅ کاریګری چی نوی لبر اودبه بر دوام پیامه ک ل استاده به نجلد و ترو اینده ده هم د استواژانه هم دکن ل پیامه ایجابی کار وکم من به من کامرانم من خاون افسابی چی منم یادوری چی برخو به هزم استپنس رساده ده مه بو برنامه رجین آگاہی لکم پیوسته پیغامکات رونو دیاریکراو به دو پیوسته پیغامکات ایجابی به سه پیوسته دلالت لکاتي استفاد کا څوار پیوسته پیغامکات هستی چې به هيث لګل ناو روخه کې دا هاوره به لبر برنامه رېجب کا پنځم به سچن زاریک پیغامکات جو پات کې به تواوی به پروګرام ده بیت همش پلانه کا وو ای اخاوچنه لګل خود دا یکم بلاعنی که ما پنج پیامی خودی ثلبت و مرکه کاریگریان لسرت هیوک من کسی چیشرم شرمنم من نه توانم مازل دگرچه شنبه بینم من لا لوازده من نه توانم لبردم بین روح خلق دا دوم من تندخوی است و کاغذی ام پیامانه ته د تو مرک دو لطوبات بکو بودور فریب د دوم پنج پیامی خودی اجابت و مرکه لوانا که هز و زد فده بخشن سردمنیان باوشیم من دست بکوا من دتوانم موازل دګره چشام بینم من حزم لخصه کړد نه بو خلک من یاد اوريم بهیزه من څلاشي وزي چې برزم هيا سهم په عام ایجابیتان لدنامه چې وسو د تمرک به همیشهش پید بیت چوارم اسه نه هسته قول ور بگرو ید له دوی یکه یا مکان مخونه وروتا کوه بتواوی ور یاندګرید پینځم زار شي د کله پیامیه کومه دستېپ کړو تناسې شي قول ورګرو هر را یګل لا شد هې درید با به هر چی شی به هزوا یکمین پیام دچار و خوان روا تغوا کند لگ بنو، و هکتو و وینا خود کو پاشان تغوا کند کرва ششم لام رو لوا عج در با کبا خوی دلیتو عج لوا و تان به کبا خال کند دلیتو اوانش ک خال کرد دلی. اگر که بینی هر پیام چی صلبیت کد یکسر حالی وشنوا به وی بلای حالی دوشن ما پاشان بیگورا و پیام چی اجازی دل به هیزی تو دتوانید ببید با ها؟ هموشتیک و خاوندار بید دتوانید هر کاریک دخوازیت انجامی بده اما شتنها بوا که وردو کتو مدیاریب که چی دوی تو بو هیزه و که خاونی تو بو آراسته دو جوله جیمرون دانه رکتی بی کامرانی همیشهی لسر اما دلید دوپاد کرنوا به نمای سلیقه ولی هاتو یکانا لبر او پیوی تا متماند بو تکانت بو خود تو هم اقل تو کابتنی کشتیکتی، کتی تو داز بسر جیانت دادگری دتوانی جیانت بگوری با ازمونیگ لکامرانی و تندورستی و سرکوتنی چی بیستنود همیشش یادت بید همو ساعت گوها بجی که تا ساتا وقتی جیانتا جی با باورو بجی با امیدو بجی با خوششتی بجی با تی کشانو بجی ریزو با